فصل سفم تسلی بخشی در مواجه با ناکامی بخش اول سیزده سال پیش از به تصویر کشیدن مرگ سقرات جاکلوی داوید به فیلسوف قدیمی دیگری پرداخت که با آرامشی غیرعادی در میان عشقهای عصبی دوستان و خانواده‌اش با مرگ روبرو شد مرگ سنکا اثری که داوید 25 ساله در سال 1773 ترسیم کرده است، آخرین لحظات زندگی این فیلسوف رواغی را در ویلای خارج از روم در آوریل سال 65 بعد از میلاد به تصویر کشیده است. یک سانتوریون رومی چند ساعت قبل به خانه سنکا رسیده بود و از طرف امپراتور دستور داشت به سنکا بگوید که باید بیدرنگ خودکشی کند. قاطعه به زیر کشیدن نرون 28 ساله از آریگه سلطنت کشف شده بود و امپراتور مجنون و انان گسیخته به دنبال انتقام کورکورانه بود گرچه مدرکی دال بر همدستی سنکا با طراهان توطعه وجود نداشت و گرچه او 5 سال معلم خصوصی و یک دهه مشاور وفادار نرون بود ولی نرون برای مزید فایده فرمان مرگ او را صادر کرد نرون تا آن لحظه برادر ناتنی‌اش، بریتانیکوس، مادرش، آگریپینا و زنش، اوکتاویا را کشته بود و تعداد زیادی از سناتورها و سوارکاران را تومه تمساها و شیرها کرده بود و در هنگام ویرانی روم بر اثر آتش سوزی بزرگ سال 64 بعد از میلاد آوازخانی کرده بود. معاشران سنکا وقتی از فرمان نرون آگاه شدند، رنگ باختند و شروع به گریه کردند. ولی سنکا مطابق روایت تاکیتوس و قرائت داوید مسترب نشد و سعی کرد جلوی های آنها را بگیرد و شجاعت ایشان را احیا کند. او پرسید کجاست فلسفه ایشان و کجاست پایداری آنها در برابر مسائب حیات. همان پایداری که سالیانی چنان دراز یکدیگر را به آن تشویق کرده بودند. او افزود یقیناً هیچ کس از ظالم بودن نرون ناآگاه نیست. پس از قتل مادر و برادرش فقط همین برایش مانده بود که مربی و معلم خصوصیش را بکشد. به همسرش پاولینا کرد و او را با محبت در آغوش گرفت. به قول تاکیتوس بسیار متفاوت با آرامش فلسفیش و از او خواست به زندگی خوبی که داشته فکر کند تا تسلی یابد ولی همسرش نمی توانست بدون او با زندگی روبرو شود. و درخواست کرد به او اجازه دهد تا رکهایش را قد کند سنکا خواسته او را رد نکرد من با این کار تو که بر جای گذاردن سرمشقی چنان عالی است مخالفت نخواهم کرد ما میتوانیم با بردباری و صبری همانند بمیریم گرچه فرجام تو شریفتر خواهد بود ولی چون امپراتور تمایلی به افزایش شهرت ظالم بودنش نداشت وقتی سربازانش متوجه شدند که پاولینا رگهایش را با چاقو بریده، چاقو را به زور گرفتند و مچهایش را بان پیچی کردند. خودکشی شوهرش به آهستگی پیش می رفت. خون با سرعت کافی از بدن سال خوردش بیرون نجهید. حتی پس از آنکه رگهای قوزک پا و پشت زانوهایش را نیز برید. بنابراین سنکا با تقلیدی خودآگاهانه از مرگ سقرات در 464 سال و شست و چهار از پزشکش خواست جامی از شوکران برایش فراهم سازد. سالها بود که سغرات را الگویی از چگونگی غلبه بر شرایط بیرونی به کمک فلسفه می دانست و چند سال قبل در نامهی تحسین خود را بیان کرده بود. او در خانه بسیار افسرده می‌شد. خواه به کودکانش فکر کنیم، خواه به همسرش زنی تند مزاج و گرگرو یا در زمان جنگ میزیست یا زیر سلطه یکی از جبباران. ولی تمام اینها چنان تغییر اندکی در روح سقرات پدید آورد که حتی خطوط چهرش تغییر نکرد. چه تمایز نادر و شگفت آوری. او این روی کرد را تا آخرین دم حیات حفظ کرد. در میان تمامی ناملایمت های روزگار آسوده خاطر و آرام بود. ولی میل سنکاب تغییر از سقرات نافرجام بود. او شوکران را نوشید ولی تأثیری نکرد پس از دو تلاش نافرجام سرانجام درخواست کرد که او را در حمام بخار جای دهند در آنجا به آهستگی خفه شد و مرد در رنج ولی با خیشتنداری و آسوده خاطر از های روزگار روایت روکوکویی داوید از این صحنه نه اولین بود و نه بهترین در این روایت سنکا بیشتر شبیه پاشای آرمیده است تا فیلسوفی در حال مرگ. لباس پاولینا در این اثر بیشتر مناسب است تا یک درباری رومی. با وجود این برگردان داوید از این لحظه هرچند خامدستان است، با سابقه طولانی ستایش از چگونگی پایداری سنکا در برابر فرجام هل ناکش دمساز است. گرچه خواستههای های سنکا به طور ناگهانی دچار تزاد شدیدی با واقعیت شده بود، او در برابر ضعفهای های معمولی از پادر نیامد. سنکا با متانت ضرورت های دهنده واقعیت را پذیرفت. او با مرگ خود همراه با دیگر متفکران رواقی به ایجاد ارتباطی پایدار میان کلمه فلسفی و رهیافتی متین و خیشتن دارانه به بلا و مصیبت کمک کرد. سنکا از ابتدا فلسفه را رشدهی برای کمک به انسانها در غلبه بر تزاد میان واقعیت و خواسته‌هایشان هایشان به روایت تاکیتوس، سنکا در واکنش به معاشران گریانش از آنها پرسید فلسفه ایشان و پایداری آنها در برابر مسائب حیات کجا رفته. انگار فلسفه و پایداری ذاتا یکی هستند. سنکا در طول زندگیش با مسیبتهای بی در اطرافش روبرو شده بود. زمین لرزه‌ها ها پمپه را ویران کرده بودند. روم و لوگدونوم بر اثر آتش سوزی ویران شده بودند. امپراتوری روم و مردمش اسیر نیرون و پیش از او کالیگولا یا مطابق توصیف درستر سوئتونیوس اسیر هیولا شده بودند. حیولایی که یک بار با عصبانیت فریاد برآورد ای کاش همه شما رومی ها فقط یک گردن داشتید. سنکا از خدمات شخصی نیز رنج برده بود. او برای شغل سیاست مداری تربیت شد. ولی در نخستین سالهای سومین دهه از زندگانیش به سل مشکوکی مبتلا شد که شش سال به طول انجامید و به افسردگی مهلکی منتهی شد. ورود دیرهنگام او به سیاست با به قدرت رسیدن کالیگولا همزمان شد. حتی پس از کشته شدن حیولا در سال 41 بعد از میلاد باز هم تاج و تخت متزلزل بود. توطعه ملک مسالینا بدون اینکه سنکا هیچ تقصیری داشته باشد به بدنامی او و تبعیدی هشت ساله به جزیره کورسیکا انجامید. وقتی سرانجام به روم فراخوانده شد برخلاف میلش شومترین ترین شغل در دستگاه سلطنتی به او واگذار شد. یعنی معلم خصوصی پسر دوازده ساله اگریپینا لوکیوس دومیتیوس آهنوب باربوس که پانزده سال بعد دستور داد سنکا را در مقابل چشمهای همسر و خانوادش بکشند. سنکا میدانست چرا توانسته در برابر استرابات پایداری نشان دهد من زندگی خود را مرهون فلسفه هستم و این کمترین دین من به فلسفه است تجربیات سنکا یک لغتنامه جامع ناکامی را به او آموزنده بود و خرد سنکا چگونگی واکنش نشان دادن به این ناکامی ها را به او آموخته بود سالها اشتغال به فلسفه سنکا را برای روز مصیبت‌باری آماده کرده بود که سانتوریون رومی در ویلا را به صدا درآورد